گامی که مصیبتی اتفاق می‌افتند تا جایی که اکثریت ناآگاه و خاموش جامعه مدنظر است فقط وقوع یک مصیبت و فاجعه میتواند پوسته نفسانیت آنها را بشکند و آنها را به ساحت تسلیم و بیداری بکشاند آنگاه که دنیا این اکثریت ناآگاه و خاموش چنان به تنگ میآید كه که معنا و جاذبه خود را از دست می دهد این مصیبت برای اینان مواجه شدن با مرگ است مرگ روانی یا فیزیکی ذهن نفسانی آفریننده این دنیا از هم می پاشد از میان خاکستر دنیای کهنه دنیایی نو پا برسه وجود میگذارد. البته تضمینی نیست که فشارها و بلاها بتواند موجب بیداری و آگاهی اکثریت ناآگاه جامعه شود اما در بلاها و مصیبتها چون این استعدادی نهفته است در بلا و مصیبت و فشار ممکن است مقاومت درونی بعضیها حتی بیشتر از پیش شود در این صورت بلا زندگی آنها را به دوزخ تبدیل می میکند بعضیها هم ممکن است هنگام بلا و مصیبت و فشار کمی تسلیم شوند اما همین مقدار نیز میتواند طعم صفا و آرامش را با آنها بچشاند هنگام بلا و مصیبت پاره ای از نفس ترک می خورد و از شکاف این ترک بارغی از آرامش و آگاهی به درون میتابد. بلا معجزاتی نیز داشته است بودن جانیانی که در آخرین لحظه عمر خود پیش از اعدام حالت بیننفسی را تجربه کردند و بدین سان تعم شادمانی و آرامش درون را چشیدند در آن لحظه ها آنها جایی در ذهن و در بیرون نداشتند تا به آنجا فرار کنند. آنها مجبور بودند آنچرا که پذیرفتنی نیست کاملا بپذیرند. آنها مجبور شدند که تسلیم محض باشند. بدین سان آنها کاملا از گذشته و آینده بریدند و تعم رهایی را برای لحظه هایی چشیدند. البته خود بلا و مصیبت نیست که موجب تجربه رهایی می شود. بلکه تسلیم است که چون این خاصیتی دارد، بلا و مصیبت اکثریت ناآگاه و خاموش را به تسلیم بامی دارد و تسلیم آنها را از قید و بند گذشته و آینده می رهاند. بنابراین اگر به هر دلیلی به بلا دوچار شدی، بیماری، ناتوانی، از دست دادن خانه و دارایی، از دست دادن شهرت و اعتبار، قطع شدن یک رابطه، مرگ، یا درد و رنج یک عزیز و یا احساس نزدیک شدن زمان مرگ خود، روی دیگر سکه بلا را هم باید ببینی. در این هنگام و هنگامه است که یک قدم با استحاله و دگرگونی بنیادی فاصله داری، فقط یک قدم مانده است، تا بتوانی مثل وجود خود را طلا کنی این یک قدم تسلیم نام دارد منظورم آن نیست که در هنگامه بلا و مصیبت شاد باشی بدیهی که شاد نخواهی بود اما ترس و درد به صفا و آرامشی درونی تبدیل خواهند شد صفا و آرامشی که موهبت الهی است پاداش صبر و تسلیم تو در مقایسه با این صفا و آرامش شادی چندان نمی ارزد این صفا و آرامش نور معرفتی عطا میکند که در پرتو آن می توانی نامی رایی و جاودانگی خیش را ببینی این یک باور نیست یقینی است که به دلیل و برهانی بیرونی نیازی ندارد استحاله درد و رنج به آرامش درباره فلسفه رواقی در یونان باستان خواندم که وقتی خبر مرگ فرزندش را به او دادند گفت قرار نبود و هرگز نمیرد آیا این است معنای تسلیم اگر چنین است من آن را نمیخواهم گاهی شرایطی پیش میآید آید که در آن شرایط تسلیم بسیار غیرطبیعی و غیرانسانی به نظر میرسد. تسلیم به معنای قطع رابطه کردن با احساسات و عواطف خیش نیست ما نمیدانیم در درون آن فیلسوف رباوی هنگام گفتن آن جمله چه گذشته است در بعضی از شرایط و های حاد ممکن است برای تو پذیرش لحظه حال حتی ممکن نباشد همیشه گزینه دیگری در کار است گزینه اول آن است که در هر لحظه تسلیم واقعیت موجود آن لحظه باشی با دانستن آن که در آن لحظه چه چیزی هست واقعیت های آن لحظه را عوض نمی کند زیرا آنچه هست در هر حال واقع شده است تو به آنچه هست آری می گویی و آنچه را که نیست می‌پذیری. آنگاه کاری را می کنی که باید بکنی به مقتضای لحظه حال اگر ساکن ساحت پذیرش باشی دیگر ذهنیت ها و احساسات منفی نمیآفرینی. دیگر درد و رنج نمیآفرینی. دیگر قما و اندوه نمی آفرینی بدین سان در اقلیم عدم مقاومت درونی به سر میبری ساحت لطف و لطافت و سبکبالی ساحت رهایی از مشقت و تقلا آنگاه که توان انجام این کار را نداری آنگاه که این فرصت را از دست می دهی چه به خاطر عدم حضور آگاهانه کافی و چه خاطر سختی مفرت شرایطی که در آن هستی و توان پذیرش را نداری برای خود درد و رنج و غم ایجاد میکنی البته به نظر میرسد که این شرایط و وضعیت توست که تو را دردمند و رنجور و غمگین کرده است اما چنین نیست مقاومت درونی توست که باعث این حالت شده است گزینه دوم اگر نمیتوانی بپذیری آنچه را که در بیرون توست بنابراین آنچه را بپذیر که در درون توست اگر نمی توانی شرایط بیرونی را بپذیری شرایط درونی خود را بپذیر یعنی در برابر دردی که می کشی، مقاومت نکن به آن اجازه بده که باشد تسلیم اندو از تنهایی و صورتهای دیگر دردمندی خود باش آنها را مشاهده کن بی آنکه به آنها بر چسبی بزنیم آنها را در آغوش بگیر آنگاه مشاهده کن که چگونه معجزه تسلیم درد و رنج تو را به آرامشی جرف تبدیل می کند. این صلیب توست پس بگذار رساخیز و معراج تو نیز باشد نمیتوانم بفهمم چگونه ممکن است کسی تسلیم درد و رنج خود باشد همانطور که خود شما اشاره کردید درد و رنج همان عدم تسلیم است چگونه میتوان تسلیم عدم تسلیم شد؟ برای یک لحظه تسلیم را فراموش کن. وقتی در و رنج تو شدید است، همه حرفهای من درباره تسلیم بیمعنا جلوه می‌کنند. وقتی در و رنج تو است، بیشتر دوست داری از آن فرار کنی تا اینکه تسلیم آن شوی. دوست نداری آنچه را که احساس می‌کنی، احساس کنی. کدام طبیعی تر است؟ اینکه احساس خود را احساس کنی و یا اینکه از آن فرار کنی اما فرار ممکن نیست راهی به بیرون نیست چیزهایی هست که تعم فرار میدهند اما شبه فرارند خود را به کار مشغول کردن مشروب مواد مخدر خشم فرافکنی سرکوب و غیره اما هیچ کدام از اینها نمیتوانند تو را از درد و رنجی که داری برهانند وقتی درد و رنج را به زمیر ناخداگاه خود میفرستی به هیچ وچ از شدت آن کاسته نمی شود. وقتی درد عاطفی خود را انکار می کنی، بدین سان همه کارهای خود را و همه افکار خود را و نیز همه روابط خود را با این انکار به درد عاطفی خود میالایی و فاسد می کنی. تو ان درد عاطفی را به عنوان انرژی منفی در همه جامی پراکنی و دیگران به طور نهانی آن را از تو میگیرند اگر دیگران نیز ناآگاه باشند احساس میکنند که باید به طریقی تلافی کنند و به تو آسیبی برسانند تو در رابطه با دیگران آن چیزهایی را از آنها میگیری که انعکاس درونیات خود تو هستند به تعبیر رومی این جهان کوه هست و فعل ما ندا سوی ما آیت نداها را صدا وقتی راهی به بیرون نیست همباره راهی در میانه هست بنابراین روی خود را از دردهای خود برنگردان با دردهای خود روبرو شو آنها را کاملا احساس کن احساس کن اما درباره آنها فکر نکن اگر لازم است آنها را ابراز کن، اما در ذهن خود از آنها داستانی نساز. همه توجه خود را به احساس خود معطوف کن، نه به شخص، شرایط و یا حوادثی که فکر میکنی، علت آن دردند. به ذهن اجازه نده از دردهای تو استفاده کند و برای تو هویت ساختگی یک قربانی، قربانی دیگران، قربانی شرایط، قربانی حوادث بسازد. اگر به حال خود دل بسوزانی و داستان قمهای خود را برای دیگران بازگو کنی فقط وضعیت دردناک خود را تداوم بخشیده ای زیرا خلاص شدن از احساس غیر ممکن است تنها امکان موجود برای دگرگونی رفتن به درون احساس است در غیر این صورت هیچ تحولی رخ نخواهد داد بنابراین توجه کامل خود را بان با چیزی معطوف کن که احساس می کنی و سعی نکن بر چسبی بر آن بچسبانی در این انتقال تمرکز خود روی احساس خود کاملاً هوشیار باش ابتدا ممکن است احساس تیرگی و ترس کنی آنگاه وقتی احساس می کنی که دوست داری روی خود را از احساس درد خود بگردانی متوجه این حالت خود باش اما روی خود را برنگردان همچنان توجه خود را روی احساس درد خود نگه دار و اندوه، ترس، دلهره و تنهایی خود را احساس کن. هوشیار بمان، حاضر باش. حاضر با تمام وجود خود. حاضر با تک تک سلول های بدن خود. با این کار نوری به تاریکی میتابانی. این نور، نور شعله آگاهی توست. در این مرحله، دیگر لازم نیست دل مشغول تسلیم باشی تسلیم خود به خود اتفاق افتاده است چگونه؟ توجه کامل همان پذیرش کامل است همان تسلیم است با عطف توجه کامل خود توانسته ای از نیروی لحظه حال بهرمند شوی. این نیرو همان نیروی حضور توست در این حضور حتی ذره ای از مقاومت درونی نیز نمیتواند باقی بماند حضور تو زمان را از میان بر می دارد. بدون زمان درد و رنج و ذهنیت ها و نیز عواطف منفی از بین می روند. پذیرش درد و رنج سفری است به مرگ رویا رویی با درد و رنج اجازه دادن به درد و رنج که باشد عطف توجب آن گام نهادن آگاهانه به ساحت مرگ است. وقتی به چنین مرگی بمیری، متوجه میشوی که مرگی وجود ندارد. بنابراین چیزی برای ترسیدن وجود ندارد. فقط نفس است که میمیرد. فرض کن که پرتو نوری فراموش کرده است که او است، جدا نشدنی از خورشید. بنابراین به غلط گمان می کند که برای بقا باید بجنگد و به همین دلیل برای خود هویتی غیر از خورشید میآفریند و به آن هویت میآویزد آیا مرگ این گمان غلط رهایی آن پرتوه نور نیست آیا طالب مرگی راحت و ساده هستی آیا ترجیح میدهی بدون درد و رنج بمیری بنابراین در هر لحظه گذشته را بمیران و بگذار نور حضور تو تیرگی خود دروغین و وابسته به زمان تو را بزداید همان خودی را که به غلط گمان می کنی که هستی.